سلام بر دوستان عزیز و گرامی، یاران و همراهان مجموعه قصه های کوهن با بخش دیگری از افسانه‌های های فولکلور ارامنه امشب در خدمت شما هستم این داستان نامش هست شیر و آب با هم میشنبیم در روزگاران قدیم تاجری دچار ورشکستگی شد و طلبکارا هر چی رو که داشت از اون بخت برگشته تصاحب کردند و به حراج گذاشتند مرد بیچاره کاملا به خاک سیاه نشسته بود و همسرش بهش گفت خوبه که دست به کار دیگه بزنی که لاقل غذای قزای روزانمون بتونی تأمین کنی تاجر گفت زن من حتی یه سکه پول سیاه هم ندارم چطور انتظار داری که بدون سرمایه کاری رو شروع کنم؟ همسرش جواب داد من دستبند و گردنبند طلای خودم رو پنهون کرده بودم الان تو میتونی اونا رو بفروشی و سرمایه کارت کنی؟ مرد تاجر یه مقداری فکر کرد و بعد به همسرش گفت میدونی من تو این شهر رسم خوبی داشتم حداقل 15 نفر برام کار میکردن حالا اگر جواهرات تو رو بفروشم اولا که سرمایه کافی برای شروع کار فراهم نمیشه زمنا تلبکارای من هنوز تمام و کمال طلبشون رو دریافت نکردن و من یه فکر بهتری دارم بهتره به جای دیگه ای بریم جایی که ما رو نشنسن و اونجا دست به هر کاری که بخوایم میتونیم بزنیم به این ترتیب اونا خرج سفری تهیه کردند و سواری کشتی شدند و به سمت شهر دیگه اون سوی دریا سفر کردند چون به اون محیط جدید آشنا شدند و در اون شهر به قول معروف جا افتادند جواهرات رو فروختند و چند تا گاف خریدند تا با فروش شیر و ماست پسندازی برای ایام پیریشون تامین کنند این کار خیلی موفقیت آمیز بود و ماستی که از شیر گاوها ها میشد، مورد پسند همه مردم قرار گرفت و روز به روز مشتری های اونا اضافه میشد. یه روز همسر تاجر متوجه شد که چند تا از مشتریها بدون اینکه شیر بخرند از اونجا رفتن چرا؟ چون شیر تموم شده بود و اون زن که دید تعداد مشتری ها زیاد شده سه تا پیمونه آب قاطی شیر کرد و هر روز این مقدار رو اضافه می کرد تا بتونه جواب درخواست همه مشتری ها رو بده سرانجام کار به جایی رسید که شیری که می فروخت نصفش آب بود یه روز مرد تاجر متوجه شد که درآمد اونها از همون مقدار شیر دو برابر شده و از همسرش خواست که توضیح بده که چه اتفاق افتاده چه موضوعی پیش اومده که با همون مقدار شیری که از گاوها میدوشن الان دارن دو برابر پول به دست میارن همسرش راز رو گفت و مرد خیلی ناراحت شد چون این کار یه جور تقلب بود به زنش گفت باید این کارو تموم کنی چون اگه این کارو بکنی دیگه مشتریا برای خرید شیر به اینجا نمیان اما زن که مطمئن بود مشتریا قادر به تشخیص طعم شیر نشده بودند و موضوع را نمیفهمند همچنان به این کار زشت خودش ادامه میداد شوهر یک بار دیگه به با اون اختار کرد و گفت زن این کارو نکن ما به اندازه کافی درآمد داریم ولی تو با این کارت ما رو بیچاره میکنی اما زن به گوشش فرو نمیرفت. رفت اصلا حاضر نبود این حرفا رو قبول کنه و همچنان نصف به نصف آب به شیر اضافه می کرد سه چهار سال اینجوری گذشت و اونها هم شانس به یار بود و مبلغ قابل توجهی پسنداز کردند یه روز مرد تاجر به همسرش گفت حالا دیگه به اندازه کافی ثروت داریم. خوبه که گاوا و اموالی رو که اینجا داریم بفروشیم و با سربلندی به شهر خودمون برگردیم تا من بتونم کاری در خور شخصیت و در واقع موقعیت اجتماعی قبلیم در شهر خودم داشته باشم. بالاخره شروع کردن به فروختن همه اسباب و اساسیه و پول و سکه طلایی رو که از فروختن اونا به دست آوردن همه رو تو پشت یک کمربند دوختند و با خودشون برداشتند و با کشتی آزم شهر خودشون شدند مدت یکی دو روز تو دریا بودن مرد تاجر وارد کابین خودش توی کشتی شد و بعد از صرف نهار قدری دراز کشید که استراحت کنه در همین لحظه ناگهان دستی از پنجره داخل شد و کمربند رو دزدید تاجر که متوجه شد با سرعت از کابین خودش یا اون اتاقی که تو کشتی داشت خارج شد و میمونی رو دید که متعلق به ناخدای کشتی بود میمون کمربند رو دستش گرفته بود و مشغول بالا رفتن از دکل کشتی بود و رفت و رفت تا در مرتفع ترین و بالاترین نقطه دکل کشتی نشست مرد تاجر ملوانا و مسافرین رو به کمک طلبید و ازشون خواست بهش کمک کنند همه جمع شدند اما هیچکس نمیتونست تا اون حد از دکل بالا بره زن تاجر که از این موضوع با خبر شد رفت روی عرشو و شروع به گریه اوزاری کرد میمون روی دکل نشسته بود و داشت کمربند رو بر رسی و زیر و رو می کرد تا اینکه در پشت کمربند چشمش به یک شیع براق بر افتاد برای همین آستر کمربند رو پاره کرد و یه سکه طلا بیرون کشید و اونو به طرف ش انداخت میمون به همین ترتیب شروع کرد خارج کردن سکه ها از آستر کمربند و دونه دونه اونها رو به عرشه یا به دریا میانداخت همسر تاجر که و اینطوری دید موهاشو کند و شروع کرد به گریه اوزاری تاجر رفت جلو و در گوش زنش گفت زن بیهوده و نکن گریه اوزاری را ننداز تو به حرف من گوش ندادی و همچنان نصف شیر رو از آب پر میکردی و میفروختی حالا این میمون داره قضاوت به میکنه و شیر رو از آب جدا میکنه. پول آب رو به آب داده و پول شیر رو به ما میده. خب این قصه به پایان رسید. کاملا مشخصه که منظور از این قصه این بود که اگر تقلبی تو کارمون باشه، اگر نادرستی بکنیم، کم فروشی بکنیم، و صداقت نداشته باشیم بالاخره یک روزی یک جایی باید سزای این کارمون رو ببینیم و حتما میبینیم همونطوری که با اون حرکت ناآگاهانه یک موجود کاملا بدون عقلی مثل میمون بیش از نصف اون سکه ها به دریا پرت شد و دیگه از دست اونها رفت و چیزی که براشون در آخر باقی موند و تونستن از روی هرش جمع کنن همون سکه هایی بود که پول شیر واقعی بود که فروخته بودن امیدوارم که هیچ کدوم ما قل و, قش و دقل و دروغ و کم فروشی توی کار و زندگیمون وارد نشه برای همتون بهترین ها رو رزوم میکنم و امیدوارم در پناه خدای متعال شاد و سربلند و تندرست باشید روز روزگارتون بکام